خانه گدا خاانوم شلوغ بود روی پله ها و کف حیات و اتاقها حتی روی ررفها هم آدم خوابیده بود صدای کندو از خانه شنیده میشد همه به یکدیگر چسبیده بودند زاری میکردند و علمها را میپوسیدند. گداخانوم خانوم کرد و چشمش گور بود وسط بالاخانه روی کرسی کوچکی نشسته بود سرش را آرام میگردند و به زاری زیداوادی گوش میداد هر وقت که زاریدن از یک گوشه میبرید فوری با آن طرف برمیگشت زاریدن دوباره شروع می میشد در اتاق پایین مردها جمع شده بودند بالای اتاق حاج شیخ با سر و صورت و شکم پف کرده نشسته بود چند برابر دیگران پاهای بزرگ و ورم کرده را دراز کرده بود وسط اتاق تسبیح چوبی بزرگی به گردنش آویخته بود چشمانش به اتاق را میکاوید سقایی لباس سیاه و سبز بین جماعت میگشت و به تشنه ها آب میداد مشی جبار و پسر مشی سفر بیرون اتاق ایستادند سید آبادی رفت بالا از بین مردم جا باز کرد و از روی پله ها سرش را برد توی اتاق و با صدای بلند گفت هاد شیخ آقا صدای زاری برید و هاد شیخ سرش را آورد جلو و به پنجره خیره شد سیدآبادی دوباره گفت، حادشیخ آقا، دو نفر اومدن سراغت. حادشیخ سرش را برگرداند و با دست اشاره کرد که سیدابادی راحتش بگذارد. سیدابادی با صدایی بلندتر گفت، دو نفر اومدن سراغت، از بیل اومدن. سیدابادی رفت جلوه حادشیخ و حادشیخ با صدای خفه پرسید، چی میخواهند؟ سیدآبادی گفت، نمیدونم، با گاری اسلام اومدن. من که نمیشناتمشون جوان هستن حادشیخ گفت صداشان کن سیدابادی رفت و با بیالی ها برگشت پسر مشتی سفر و سیدابادی سرهاشان را بردند تو مشتی جبار از بین مردم گذشت و رفت و ایستاد وسط پاهای ورم کرده حادشیخ حادشیخ نگاهش کرد و گفت چی شده؟ مشتی جبار گفت که خدا و مشتی بابا سلام رسوندن و گفتن که بیاین بیال حادشیخ گفت بیام بیل پاها و شکمش رو نشان داد مشری جبار گفت آقا مرحوم شده حادشیخ یک دفعه تکان خورد و نیمخیز شد صدای زاری برید حادشیخ دستش را دراز کرد که مشری جبار کمکش بکند سقا هم اومد دوتایی حادشیخ را بلند کردند که آرام آرام رفت طرف پنجره و از پنجره رفت توی حیات عبا و عمامش را بردند. پسر مشی سفر و سیدابادی و مشتی جبار و سقا چهار نفری کمکش کردند تا از در حیات رفت بیرون. از کوچه گذشتند و رسیدند به جایی که گاری ایستاده بود. اسب اسلام سرش را انداخته بود پایین و چرت میزد تابوت بزرگی را تکیه داده بودند به گاری. پسر مشی سفر و سقا تابوت را برداشتند و گذاشتند کنار دیوار. و عبای حاج شیخ را پهن کردند کف گاری و امامش را گذاشتن جای بالش کمک کردند تا حاج شیخ رفت بالا و کف گاری دراز کشید مشتی جبار و به سر مشتی سفر نشستن جلو جای سورچی مشتی جبار برگشت و حاج شیخ را نگاه کرد که چشمهایش را به آسمان دوخته بود و پاهایش به بزرگی دوتا خیک از لبه گاری آویزان بود سقا و سیدابادی رفته بودند آنور گودال و چشمها را تنگ کرده بودند و آنها را نگاه می‌کردند. آفتاب بالا می‌آمد. چیزی به ظهر نمانده بود. خدا و مشدی بابا که کارشان در قبرستان تمام شد، برگشتند توی ده. اسلام و عباس را دیدند که نشستن کنار استخر و چپاق می‌کشند. آفتاب روی درخت ها پند شده بود ماهی ها آمده بودند روی آب و کف می‌خوردند. کت خدا گفت خبری نشد؟ اسلام گفت نه هنوز نیومده کت خدا گفت ما کارامونو کردیم و تمام شد اسلام گفت هنوز خیلی کار مونده من و عباس هم اینجا رو درست کردیم کت خدا گفت حالا بریم جنازه را بیاریم مشتی بابا گفت نه بهتر اول بریم و هر طوری شده آقا نسی رو بکشیم بیرون اگه آ بیاد و ببینه که به آقا بالا سر جنازه نیست، آبروی بیل میره. کت خدا گفت: خیلی خوب. جوانها راه افتادند و رفتند طرف حیاط و از دیوار بالا رفتند و نشستند کنار دیگران. کت خدا و مشتی بابا و اسلام رفتند طرف خانه خاله. پنجره باز بود و پیرزن آمده بود و نشسته بود جلو پنجره. گربه هم آنجا بود که تا آنها را دید، بلند شد و خود را تکان داد و دور شد. کت خدا گفت، خاله خانم، آقا میرنصیر کجاست؟ خاله گفت، اونهاش هاش، اون ته. مردها ها خم شدند و آقا را دیدن که همون جور سر پا ایستاده و سرش را گذاشته کف تاخچه و گریه میکند کند. کت خدا گفت، آقا نسیر، حالا دیگه دیر شده بیا بیرون. آقا میرنسیر جواب نداد. مشری بابا گفت، آقا، میدونی که جماعت میخوام به تو سرسلامتی بگن؟ بیا بیرون. اسلام به کت خدا و مشتی بابا گفت: تا شب هر جوری شده باید بیاد بیرون. خاله به کت خدا گفت: خودتو خسته نکن. اون بیرون بیا نیست، راحتش بذار. مشتی بابا گفت: فکر نمیکنم بیاد بیرون. مردها برگشتند و راه افتادند. کت خدا پرسید: چرا نمیاد بیرون؟ مشتی بابا گفت: خسته دختره رو می خوره، اسلام گفت: پناه بر خدا. پدرش مرده اینه خیالش نیست اما قصه دختره رو میخوره خدا گفت از کجا معلوم که میدونه پدرش مرده دوباره برگشتند و رفتند پیش خاله گربه که آمده و لم داده بود تا آنها را دید پا شد و رفت کتخدا گفت خاله خانم پسره میدونه که پدرش مرده خاله گفت شایدم بدونه کت خدا گفت آخه چرا نمیاد بیرون خاله گفت، پریشب خواب دیده که دختر خالش تو مریز خونه مرده. کتخدا گفت، چه کار میشه کرد که این خواب از کلش بره بیرون؟ خاله گفت، باز برگردیم شهر رو پیداش کنیم و بدونیم که مرده یا نمرده. کتخدا گفت، کی این خاله گفت، همین امروز. خدا گفت، سب نمی کنی که کفن و دفن آقا تموم بشه؟ خاله گفت، کاری از دست ما که بر نمیاد. خودتون این کارو بکنی. اسلام گفت، گاری رفته ها شیخ را بیاره، با چی می خواهیم خاله گفت، اون دفعه هم که رفتیم با گاری تو نرفتیم، دو تا از مشی سفر گرفتیم و رفتیم، آخه دختره نمیتونست راه بره، اما این دفعه ما دو پای پیاده میریم کد خدا گفت، آقوت به خیر بشین، برگشتند و رفتند طرف حیات، آفتاب رسیده بود وسط آسمان کتخدا و مشتی بابا رفتن روی دیوار و اسلام که دلش آشوب بود رفت نشست زیر بید تا حالش جا بیاید. مشتی بابا نگاه کرد و دید که جنازه باد کرده. خدا فکر کرد که مرده از دیشب تا حالا خیلی بزرگ شده است. مشتی بابا به جوانها گفت دیگه گناه داره. نصف شبانه روزه که جنازه مونده رو زمین. بهتر ببریم و به آب بگیریم. تا کارهتمون بشه از هر کجا شده عاشق پیداش میشه کت خدا گفت آره دست به کار بشیم گناه داره و از نردبان رفت پایین تو حیات ایستاد و فکر کرد و با صدایی بلند گفت چجوری بیاریمش بالا مشتی بابا از بالا نگاه کرد و دید حیات غیر از یک دریچه کوچک راه دیگری به بیرون ندارد از کت خدا پرسید از کجا آمده بودین تو؟ کت خدا خم شد و دریچه را باز کرد و گفت از اینجا دالان تنگ و تاریکی پیدا شد. مشتی بابا گفت چجوری اومده بود؟ خدا گفت اون وقت که اومده بود زنده بود. دریچه را وا کرده بود. خم شده بود. اومده بود اینجا که خونک و خلبت بود. اما حالا حالا چجوری ببریمش بیرون؟ مشتی بابا سرش را تکان داد. عباس گفت کاری نداره تابوت را میبریم پایین و مرده را میذاریم روش و از همینجا میاریم بالا و میبریم کنار استخر کت خدا گفت تابوت بزرگه وارد حیات نمیشه مشتی بابا گفت امتحانش که ضرر نداره عباس و موسرخه تابوت را آوردند و از بالا وارد حیات کردند مشتی بابا هم از نردبان رفت پایین با کت خدا دو نفری تابوت را گرفتند و کشیدند پایین اما دسته های تابوت چنان دراز بود؟ که به دیوار گیر کرد و تابوت پایین نیامد. کتخدا خدا گفت: نگفتم؟ عباس گفت: کاری نداره، کمی ارش میکنیم. کتخدا خدا گفت: حایده نداره. یه فکر دیگه بکنیم. مشتی بابا گفت: کتخدا خدا راست میگه، با تابوت نمیشه. بریم چند که چوب بیاریم و بکنیم زیر مرده و از زیر چوبام تناب رد کنیم و بکشیم بالا. کتخدا خدا گفت: مشتی بابا راست میگه. این کار خیلی راحته. عباس گفت: «خب دیگه ما اینو نمیدونستیم همه ساکت نشستند تا موسرخه و عباس با چند تکه که چوب و تناب برگشتند کت خدا و مشتیبابا گوشه های زیلو را جمع کردند. مردها اول تناب ها را پهن کردند زیر جنازه و چوب ها را گذاشتن روی تناب ها و گوشه هاشان را دادند دست که بالای دیوار بودند. کت گفت: آهسته بکشیم بالا. اگه تون بکشین همتون از اون بالا میافتین پایین میدونین که تناپاها رو کشیدند مشتی بابا گفت صبر کنین ما میایم بالا تناپاها رو نکشیدند اول کت خدا و بعد مشتی بابا از نردبان رفتن بالا و در دو گوشه دیوار ایستادند بقیه تناپاها را کشیدند جنازه که بالا می سبکتر میشد پاهای لخت و ورم کردهش تا رنگ های روی دیوار را جمع می کرد و چند تا شیار جا میگذاشت. جنازه را که شستند و کفن کردند خیلی از ظهر گذشته بود. خسته نشسته بودند دور تا دور استخر به آب و ماهی ها نگاه می کردند. جنازه توی تابوت بود و تابوت در سایه زیلوی اسلام را تا کرده گذاشته بودند روی نردبان هیچکس حرف نمیزد. همه رفته بودند تو فکر که صدای پارس پاپاخ برند شد و دوان دوان آمد سر کوچه ایستاد و پنجول کشید همه برگشتند و نگاه کردند بعد گاری اسلام پیدا شد که مشتی جبار و پسر مشتی سفر جای سرچیش نشسته بودند و حاج شیخ که نشسته بود کف گاری بزرگ خیلی بزرگ دیده میشد. مردها بلند شدند و ایستادند عباس به موسرخه گفت شخ چرا اینجوری شده؟ موسرخه گفت باد کرده گنده شده عباس گفت آره سرش باد کرده دستا و شکمش هم باد کرده موسرخه گفت چند برابر شده عباس گفت اما امامش چقدر پار است گاری آمد و نزدیک جنازه ایستاد کت خدا و مشتی بابا جلو رفتند و خواستن سلام بکنن نتوانستند. ایستادن به تماشای حاج شیخ که نیمخیز شده بود و با وحشت به تابوت نگاه می کرد. اسلام هم جلو رفت و ایستاد حاج شیخ یک دفعه امامش را برداشت و کبید زمین و نعره کشید مردها جلو آمدند و دیدن که عشق چشمهای حاج شیخ را پر کرده است اولوار بود که یکی در مرگ آقا گریه می کرد مردها که به خود آمده بودند ناله و زاری سردادند زنها هم از توی خانه ها و پشت دیوارها شروع به ناله کردند صدای شیون از تمام بیل بلند شد بز سیاه اسلام و پاپاخ فرار کردند و رفتند پشت خانه مشتی سفر و مشتی سفر را دیدند که سرش را از سوراخ پشت بام بیرون آورده بود و دستهایش را گرفته بالا و چشم دوخته به استخر زار زار گریه میکرد و به پهنای صورتش اشک میریخت به که برگشتن چیزی به غروب نمونده بود چند جوان رفته بودند زیر بغل هاشیخ و راهش میبردند حادشیخ امامش رو باز کرده و انداخته بود دور گردنش چشمانش ورم کرده بود و نفسش به زور بالا می آمد کنار استخر که رسیدند دیدند زنها دور تا دور میدان را علم زدند و با چادرهای سیاه نشستند زیر درخت بید و تو مردها را دیدند گریه و زاریشان بلند شد مردها با سرهای پایین رفتند طرف خانه آقا از کوچه اول رد شدند و رسیدند سر کوچه دوم و بعد خانه آقا در بسته بود و توبره بزرگی کاه انداخته بودند جلوی در اسلام جلو رفت و توبره را کنار زد و دستش را از سوراخ در برد تو و در را باز کرد اول خودش رفت تو و آجرهایی را که چیده بودند جلوی دریچه برداشت دالان نمور و خاکی روشن شد ها شیخ را آوردن تو و رفتند. طرف تنها اتاق خانه که بزرگ و تاریک بود و تنها از سوراخ وسط سقف روشنایی ضعیف قروب می تو. اسلام رفت طرف تاخچه. چراغ را روشن کرد و آورد گذاشت وسط اتاق. توی اتاق دوتا زیلو بود و یک قرآن و یک کاسه و مقداری پیاز و نان خشک. چند تا متکا و لحاف همچیده بودن روی هم. مردها در دالان ایستادند حادشیخ نشست روی زمین و بعد آرام آرام پاهایش را دراز کرد و بعد تمام قد دراز شد سینش تون تون حرکت می کرد و لبهایش می همه منتظر ایستادند شیخ گفت پسرش را صدا کنید کت خدا گفت امروز زهر رفته شهر ها شیخ. نیمخیز شد و گفت بیچاره آقا هیچ کس حرف نزد حاج شیخ گفت دارم خفه میشم منو ببرین حیات مشتی بابا دریچه در پای دیوار را باز کرد دالان تنگ و تاریکی پیدا شد اول خودش رفتو و بعد حاج شیخ که به زحمت دولا شده بود و پشت سر حاج شیخ کت خدا دیگران توی اتاق منتظر ماندند اسلام به عباس گفت حادشیخ گوش نشه برو کمی اشکنه از خانه مشتی سفر بردار بیار عباس رفت بیرون دیگران هم رفتند بیرون و توی کوچه ایستادند خدا و مشتی بابا حادشیخ را وارد حیات کردند نردبان هنوز پای دیوار و زیلو و متکای آقا کف حیات پهند بود حادشیخ روی زیلو دراز کشید گنده تر از آقا بود مشری بابا نگاه کرد پتیله فانوس تا ته سوخته بود کاسه آب پر پشه بود مشری بابا کاسه را برداشت و آبش را پاشید روی زمین و رفت که آب تازه بیاورد کت خدا گفت بابا چراغم بردار بیار اینجا مشری بابا گفت میارم و فانوس را برداشت و شد و رفت توی دالان کت خدا به هیکل باد یه حاج شیخ نگاه کرد و گفت خدایا چقدر شبیه آقا شده؟ هوا که تاریک شد آنهایی که آمده بودند توی باقه مریضخانه و جلوی دالانه جمع شده بودند دست دسته بیرون رفتند از اول صبح خبری از پیرزن نشده بود دختر میر ابراهیم رفته بود کنار میلهها ها ایستاده بود و بیرون را تماشا می کرد. و تا دربان توی اتاقش رفت همراه دیگران آمد بیرون هوای بیرون گرم تر بود از پیچ خیابان که گذشت ضعف شدیدی سراغش آمد و نشست روی پله خانهای و رفت تو فکر ساعتی از شب گذشته بود که پیرزن از پیچ خیابان پیدا شد با قد خمیده خورجین سنگینی را به دوش می کشید. تا جلوی دختر میر ابراهیم رسید خرجین را گذاشت زمین دکه اینان نان در آورد و چنگی ریخت روی نان و بی آن که آشنایی دهد رفت آن بر خیابان تا سهمی گدای دیگر را هم بدهد شب که شد همه سیاه پوشیدند آمدند لب استخر محتاب کدری افتاده بود روی بیدها و بامهای کوتاه خانه ها همه جا نیمه روشن بود اسلام و مشتی جبار دوتایی سنگ سیاه را برگرداندند و انداختند توی گودال. منتظر ایستادند تا خدا آمد و به اسلام اشاره کرد. اسلام رفت روی سنگ و سینش را صاف کرد و با صدای بلند شروع به نوه خواندن کرد. مردها می پیرانشان را باز کردند و شروع کردند به گریه. زنها آمدند پشت بامها و در حالی که سرهاشان را در روشنی محتاب، تکان تکان میدادند، زاری سر دادند اول پاپاخ و بعد تمام سکهای بیل رفتند بیرون و در میدانچه پشتخانی مشتی سفر جمع شدند و گوش ایستادند بوز سیاه اسلام رفت توی پستو و قایم شد آن شب بیل تا صبح نوحه خواند و عزاداری کرد خاله و آقا نسیر صبح زود رسیدند به شهر و در میدان شروعی پیاده شدند هر دو گرسنه بودند و نا نداشتند که راه بروند آقا میر نسیر نشست کنار دیوار زیر سایه چتر کهنهی که به دیوار کبیده بودند امامش توی ده جا مانده بود دستمال سبزی دور سرش بسته بود خاله گفت گرست نیی؟ آقا میر نسیر صرفه محکمی کرد و چیزی نگفت خاله گفت هیچی نداریم بخوریم آقا میرنسیر دوباره صرفه کرد خاله گفت حالا یه چیزی لازمه بخوریم که با همون قوت بگیره تو همینجا باش من برم گدائی شایدم که چیزی گیرمون اومد خاله چادرش را بست دور کمر و دولا دولا راه افتاد دستهایش را به پشت زده بود پایش پا به زحمت از زمین کنده میشد. آقا دستویش را گذاشت روی گناهایش هایش که از تب گر گرفته بود و همان که صرفه می کرد خاله را نگاه می کرد که توی شروعی جماعت گم شد دکتر که توی باغ مریضخانه راه می رفت آقا میر را دید که با لباس های و دستمال سبز دور سر این آنور بر می و به همه جا سرک می کشد. پرستار را صدا کرد و گفت ببینیم پسرمان کجاست؟ پرستار رفت جلوی آقای میرنصیر و گفت: مال کجایی؟" آقای نسیر صرفه محکمی کرد و چیزی نگفت. پرستار به دکتر گفت: "حرف نمیزنه." دکتر صرفه کرد و گفت: "بپرس ببین مال کدوم قسمته." پرستار ها را نشان داد و گفت: مال کدوم اینا هستی؟" آقای میرنصیر صرفه کرد و گفت: "زهرا رو میخوام." پرستار گفت: "زهرا" زهرا کیه؟ آقا میرنسیر صرفه کرد و چیزی نگفت پرستار خم شد و چشمهایی آقا میرنصیر را نگاه کرد و پرسید زهرا کیه؟ آقا میرنسیر سرش را تکان داد و چیزی نگفت دکتر گفت ببر به خابونش پرستار آقا میرنصیر را برد توی دالان تاریکی که پر آدم بود و گوشه زیلوی نشاندش و آمد بیرون و پیرزن را دید که با عجله به گوشه باغ می رود. جلوش را گرفت و گفت نه فاطمه یکی از مریضا غذا نخورده و گرست نشه چیزی داری بهش بدی؟ پیرزن گفت البته که دارم پرستار را به گوشه باغ برد روی کاغذ روزنامه مشتی پولو ریخت و دکه هم نان برید و گذاشت رویش و داد دستش کت خدا که بالای دیوار آمد مردها بلند شدند و ایستادند، آفتاب زده بود و به یل می درخشید، کتخدا نگاهشان کرد و از روی دیوار پرید پایین و رفت طرف اسلام، از بین جماعت گذشتند و رفتند خانه اسلام، کتخدا دم پنجره ایستاد، اسلام رفت تو، زیلو را جمع کرد و از پنجره آورد بیرون، با هم آمدند کنار دیوار، ول خدا و بعد اسلام از دیوار بالا رفتند و پریدند توی حیات کچک چند لحظه بعد دوباره آمدند بالای دیوار خدا با صدای گرفته ای گفت فاتح مردها به هم نگاه کردند و گریه هاشان را خوردند و فاتحه خواندند. اسلام مشتی جببار و پسر مشتی سفر را صدا کرد و گفت سوار گاری بشین و برین سه و بگیده خبر بدین که چی شده بعد میان بر بزنین برین خاتون آباد شاغمیر حجت بهش بگین که ها آقا مرحوم شده بیاد برای نماز و برش دارین بیاین مشی جبار و پسر مشری سفر همدیگر را نگاه کردند و راه افتادند طرف خانه اسلام اسلام گفت ما باشین که بازه مثل دیروز نزنه بیرون مشی جبار صرفه کرد و چیزی نگفت اسلام و عباس رفتند طرف گودال تا سنگ سیاه مرده‌شوری را بیاورند بیرون کتخدا و مشتی بابا رفتند خانه کت خدا و کلنگ را برداشتند و رفتند قبرستان و طرف چپ شیر زنگی مشغول کار شدند و یلی ها رفتند بالای دیوار و دور تا دور نشستند و زل زدند به جنازه که توی حیات افتاده بود و آرام آرام باد میکرد و بزرگ می شود.